طلا رفیق سفر بخت نیک خواهت بس نسیم روزه شیراز پیک راحت بس دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس و اگر کمین به گشاید غمیز گوشه دل حریم درگه پیر مغان پناهت بس به صدر مصفبه بنشین و ساغر مینوش که این قدر ز جهان کسب مال و جا ات بس زیادتی مطلب کار بر خداسان کن سراحی می لعل بهتی شما ات بس فلک به مردم نادان دهد زمام مراد تو اهل فضلی و دانش همین گناه ات بس هوای مسکن معلوف و عهد یار قدیم ذره روان سفر کرده و خواهد بس به مننت دیگران خوم کن که در دو جهان رضای ایزد و انعام قاض شاحت بس به هیچ ورد دیگر نیست حاجت ای حافظ دعای نیم شب و درس صبح گاحت بس